داستان دختر شاه پریان نوشته لورد دانسنی ترجمه دکتر آرش حجازی ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افسانه‌ای ای به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش بانو بنفش بخش یازدقم جرفای جنگل آن روزها زیروندرل پسرک را با جادوها و شگفتیهای کوچک سرگرم میکرد و پسرک تا مدتی خوشنود بود و سپس اندک, اندک در سکوت سعی کرد حدس بزند که مادرش کجا رفته است به هر سخنی گوش میداد و مدتها درباره آن فکر میکرد و روزها به دین منوال گذشت و او تنها میدانست مادرش رفته است اما درباره موضوعی که ذهنش را مشغول کرده بود هیچ نمی گفت بسه پس اندکندک از گفته ها و ناگفته ها و یا از نگاه ها و سرتکان دادن ها فهمید در رفتن مادرش ماجرایی شگفت در میان بوده است اما نمی توانست در یابد آن شگفتی چه بوده است هرچند هنگامی که می کوشید حدس بزند تمامی شگفتی ها از اندیشه‌اش میگذشت و سرانجام یک روز از زیروندریل پرسید و هرچند اندیشه زیروندریل از اعثار پی در پی خرد انباشته شده بود و هرچند از مدتی پیش میترسید که روزی این پرسش را بشنود اما نمیدانست این پرسش روزها در ذهن اوریون بوده و نتوانست از درون خردمندی‌اش پاسخی بهتر از این بیابد که مادرش به جنگل رفته است هنگامی که پسرک این را شنید تصمیم گرفت به جنگل برود تا مادرش را بیابد روزهایی که اوریون به همراه زیراندریل برای گردش به دهکده کوچک می رفت روستایان را در حال آمد و رفت و آهنگر را در کارگاهش و مردم را در درگاه خانه هاشان و مردمی را می دید که از دشتهای دوردست به بازار می آمدند. و همه آنها را می شناخت و بیشتر از همه ترل را با گام های خاموشش و اوتر را با اندام های می شناخت چون هر دوی آنها هنگامی که او را می دیدند قصه هایی از سرزمینها و جنگل های بالای تپه ها برایش می گفتند و در این گردش های کوتاه دوست داشت قصه هایی از سرزمین های دور بشنود در کنار یک چاه درخت مرده کهنی قرار داشت که زیروندریل در غروبهای تابستانی کنارش می‌نشست و اوریون بر روی سبزه ها بازی می‌کرد. و اوت که به هنگام غروب بیرون می‌رفت با کمان غریبش از سبزه ها می‌گذشت و گاهی هم ترل می‌آمد و هر کدام می‌آمدند اوریون او را نگاه می‌داشت و از او می‌خواست قصه‌ای درباره جنگل‌ها بگوید. و اگر اوت آمده بود، با نگاهی ترسان به زیراندریل تعظیم میکرد و قصه ای از زندگی گوزدها میگفت. و اوریان میپرسید چرا؟ سپس نگاهی بر چهره اوت میانداخت که گویی سعی دارد با دقت چیزهایی را به یاد بیاورد که مدتها پیش رخ داده. و پس از چند لحظه خاموشی، کلیل کوهن فلان کار گوزن را میگفت و چگونگی پدید آمدن این عادت را در او توضیح میداد. اگر تریل از سبز زار می چنان وانمود میکرد کرد که زیران را ندیده است و با شتاب و با صدایی آهسته بسهی درباره جنگلها میگفت و میرفت و اوریون حس میکرد غروب را سرشار از راز بر جای گذاشته است قصه هایی درباره رفتارهای گوناگون جانوران میگفت و این قصه ها چنان عجیب بودند که آنها را تنها برای اوریون جوان میگفت چون می میگفت مردم بسیاری هستند که نمی توانند حقیقت را باور کنند و نمی خواهد قصه هایش به گوش چنین مردمی برسد یک بار اوریون به خانه او رفته بود کلبه تاریکی پر از پوست آویخته شده بر دیوار همه گونه پوست پوست روباه، راسو و سمور و پوست های کوچکتری که در گوشه کلبه توده شده بودند. کلبه تاریک ترل برای اوریون شگفتنگیستر از هر خانه دیگری بود که تا آن هنگام دیده بود. اما اکنون پاییز بود و پسرک و پرستارش به ندرت اوت و ترل را می دیدند. چون در غروبهای مهالود از ترس تگرگ دیگر در کنار درخت مورد نمی نشستند. اما اوریون به راه پیمایه های آنها مینگریست و یک روز ترل را دید که رو به تپه ها از دهکده بیرون می ربد. او را صدا زد. ترل خاموش و با گونه ای سردرگمی ایستاد. چون خودش را کمتر از آن می دانست که توسط پرستار قلعه جادوگر یا زن دیده شود. و اوریون به سوی او دوید و گفت جنگلها را به من نشان بده و زیراندریل دریافت زمان آن فرار رسیده که اندیشه های اوریون از دره فراتر رود و دانست هیچ کدام از تلسمهایش نمی تواند او را تا مدت درازی از رفتن به دنبال اندیشههایش باز دارد و ترل گفت نه سر من و با ناراحتی به نگری نگریست که به دنبال پسرک آمده بود و او را از ترل دور می کرد و تریل به سراغ کارش در جرفای جنگل ها رفت و این جز پیشبینی جادوگر نبود چون اوریون گریست و سپس رؤیای جنگل را دید و روز بعد تنها به خانه اوت رفت و از او خواست به هنگام شکار گوزن او را هم با خود ببرد و اوت که بر روی پوست گوزنی گسترده در برابر هیزمهای سوزان ایستاده بود بسیار درباره جنگلها سخن گفت اما او را با خود نبرد به جای آن اوریون را به قلع بازگرداند و اونجل خیلی دیر از بازگو کردن ماجرای رفتن لیرازل به جنگل پشیمان شد چون کلامش زودتر از هنگام روح سرگردانی را فراخوانده بود که مقدر بود به سراغ اوریون بیاید و دریافت تل دیگر نمی توانند برای اوریون خوشنودی به همراه بیاورند. بنابراین سرانجام به او اجازه داد به جنگل برود. اما پیش از آن اسایش را بلند کرد و با افسونی روح جنگل را به درون آتشدان کودکستان فراخواند و آن را وادار کرد به میان سایه های از آتش برود و با آنها پیرامون اتاق بخزد. تا آنجا که کودکستان به رازامیزی جنگل شد هنگامی که این تلسم هم نتوانست اوریون را تسکین دهد و او را به ماندن در خانه مشتاق کند به او اجازه داد به جنگل ها برود یک روز صبح اوریون بار دیگر نهانی از میان سبزههای موجدار به خانه اوت رفت و جادوگر پیر می رفته است اما او را باز نداشت چون او هیچ تلسمی نداشت که عشق به سرگردانی را که دیر یا زود فرا می رسید در انسان فرو بنشاند و نمی‌خواست در حالی که روح اوریون به جنگل‌ها رفته جسم او را نگه دارد این شیوه جادوگران است بین دو چیز به آنی اولویت می‌دهند که رازآمیزتر است بنابراین پسرک تنها به خانه اوت آمد و از باغش گذشت گل‌های مرده به ساقه‌های قهوه‌ای آویخته بودند و اگر به گللبگهایش دست میزد خورد میشدند و فرو میریختند. چون نوامبر آمده بود و تمام شب برف فریزه میباریدند. و درست در همین هنگام اوت خلقی داشت که در کمتر از یک ساعت از بین رفت. اما برای اشتیاق پسرک مناسب بود. به هنگام ورود اوریون اوت داشت کمانش را از دیوار برماشت و قلبش به جنگل ها رفته بود. و هنگامی که پسرک مشتاق رفتن به جنگل آمد، شکارچی به خاطر آن خلق ویژه نتوانست سرپیچی کند. بنابراین اوریون را بر روی شانه اش گذاشت از دره بالا رفت. مردم آنها را بدین گونه روانه دیدند. اوت با کمان و سندلهای نرم بی صدا و جامه های قهوه ای چرمیش، اوریون برشانه اش پیچیده در یک پوست آهو که اوت بر دوشش انداخته بود و هنگامی که ده کده پشت سرشان از نظر محو شد اوریون از دیدن دور و دورتر شدن خانه ها خوشحال شد چون هرگز این اندازه از آنها دور نشده بود و هنگامی که سرزمین های بالای دره گستری خود را در برابر چشم هایش گشودند احساس کرد که اکنون دیگر فقط به یک پیاده روی نرفته است بلکه در آغاز یک سفر است و سپس تیرگی آرام جنگل زمستانی را در دور دست دید و این منظره ناگهان او را ترسی لذت بخش آکند اوت او را به تاریکی، راز و پناه جنگل ها برد اوت چنان به نرمی وارد جنگل شد که با ورودش توکاهای نگهبان جنگل که با دقت بر روی شاخه ها نشسته بودند، نگریختند و تنها زیر لب اشاره های حشداردنده اشان را زمزمه کردند و تا وقتی که اوت میگذشت با سو زن گوش دادند و هرگز مطمئن نبودند که انسانی آرامش جنگل را شکسته است یا نه. اوت با تو به داخل آن افسون و آن تیرگی و آن آرامش ژرف رفت و با ورود به جنگل، آرامشی به چهرهش آمد چون آرام و بی صدا به درون جنگل رفتن جوهر زندگیاش بود و همان گونه وارد جنگل میشد که انسانها به سراغ تمنای قلبشان می روند و کمی بعد پسرک را بر روی سرخصی قهوهی گذاشت و به تنهایی کمی پیش رفت اوریان او را که با کمان در دست چپش می رفت و سرانجام همچون سایه ای در میان مجتمع سایه ها در جنگل ناپدید شد و هرچند اوریون نمیتوانست اکنون با او برود از این موضوع خوشحال بود چون از چگونگی رفتن و حالت اوت فهمیده بود که این یک شکار است و یک سرگرمی برای خوشحال کردن یک بچه نیست و این او را بیشتر از تمام بازیچههایش خوشحال کرد و هنگامی که منتظر بازگشت اوت بود جنگل بزرگ در خاموشی و تنهایی پیرامونش را گرفته بود و پس از مدت درازی در میان شگفتی جنگل صدایی شنید آهسته تر از صدای توکاها که برگهای خشک را به هم می زدند تا حشرات را بیابند، اوت دوباره بازگشته بود گوزنی پیدا نکرده بود و مدتی کنار اوریون نشست و به سوی یک درخت تیر انداخت. اما کمی بعد پیکانهایش را جمع کرد و پسرک را دوباره بر روی شانههایش گذاشت و به سوی خانه بازگشت. هنگامی که جنگل بزرگ را ترک کردند، عشق در چشم اوریون جمع شده بود. چون عاشق رمز و راز عظیم خاکستری شده بود که ما ممکن است بدون توجه یا با احساسی لحظه ای از نکته ای فراموش شده یا پیامی دریافت نشده از کنارشان بگذریم اما ارواح آنها هم های اوریون بودند. بدین ترتیب، گویی از نزد دوستان جدیدی آمده باشد، به ارل بازگشت و ذهنش آکنده از رهن درختان پیر خردمند بود چون تنه هر درختی برای او معنایی داشت. و هنگامی که اوت اوریون را برگرداند، زیروندریل در کنار دروازه منتظر ایستاده بود، و درباره باره ماجراهای جنگل هیچ نپرسید و که اوریون از جنگل گفت هیچ پاسخ نداد چون به جنگل حسودیش میشد که تلسمش توانسته بود اوریون را از بند تلسمهای او بیرون بکشد و اوریون تمام شب در رؤیاهایش در جرف های جنگل گوزن شکار می کرد. روز بعد اوریون دوباره پنهانی به خانه اوت رفت اما اوت که به گوشت احتیاج داشت به شکار رفته بود بنابراین به خانه ترل رفت و تریل در خانه تاریکش در میان پوست های روی همچیده شدهش نشسته بود اوریون گفت من را به جنگل ببر و ترل کنار آتش در صندلی بزرگ چوبی نشست تا درباره آن بیندی شد و از جنگل بگوید او شبیه اوت نبود که درباره چیزهای ساده درباره گوزنها و رفتارهایشان و فرارسیدن فصلها بگوید، بلکه از چیزهایی سخن میگفت که در اعماق جنگل و در ژرفهای تاریکی حس میکرد. افسانهایی از انسانها و جانوران برایش گفت. و به ویژه دوست داشت درباره کارهای روباه و راسوها پس از غروب آفتاب قصه بگوید. و همچنان که خیره به آتش آنجا نشسته بود و درباره شیوه های کوهن ساکنین سرعخص ها و بوته های تمشک سخن می گفت اوریان اشتیاقش را برای رفتن به جنگل فراموش کرد و با خوشنودی بر روی صندلی کوچکی گرم شده با پوست نشست و گوش داد و به ترل چیزی را گفت که به اوت نگفته بود اینکه که می ممکن است روزی مادرش به کنار یکی از درخت های بلوت بیاید چون برای مدتی به جنگل رفته است و تریل اندیشید که ممکن است چنین باشد چون برای او هیچ رخداد شگفتانگیزی در جنگل باور نکردنی نبود و سپس زیروندریل به دنبال اوریون آمد و او را به قلعه بازگرداند و روز بعد به او اجازه داد دوباره به نزد اوت برود و این بار اوت دوباره او را به جنگل برد و چند روز بعد دوباره به خانه تاریک تریل رفت، همان خانه ای که گویی راز جنگل در تاخچه ها و گوشه های آن گرد آمده بود و به قصه های شگفتنگیز تریل گوش داد. و شاخه های جنگل در برابر درخشش غروب تیره و خاموش شدند و زمستان آغاز به گستردن تلسمش بر تپه های بالای دره کرد. و خردمندان ریزش برف را پیشگویی کردند و یک روز که اوریون با اوت به جنگل رفته بود دید که چگونه یک گوزن نر را شکار کرد هنگامی که شکارچی گوز را آماده کرد و پوست کند و گوشتش را به دو نیم کرد و در پوستش که سر و شاخهایش از آن آویزان بودند پیچید اوریون او را تماشا می کرد سپس اوت شاخها را به بقیه دسته بست و همه را بر روی شانه اش انداخت و آن را نیرومندانه به خانه آورد و پسرک بیشتر از شکارچی لذت برد و آن روز غروب اوریون برای بازگفتن ماجرا به نزد تریل رفت اما ترل داستانهای شگفتانگیزتری داشت و روزها چنین میگذشت از جنگل و از غصه های تریل عشق به تمامی مسائل مهم برای یک شکارچی در اوریون پدید آمد و روحیه‌ای در او رشد کرد که به خوبی با نامش هماهنگ بود و هنوز هیچ اثری از بخش جادوی وجودش نبود سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصرهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه، قصه های از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،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 ادساین مهران دوستی